این شروع بشرا جمیعا و, و انترو اغلال ورود السلام علیکم الله و برکاته گرامی های گرامی ببخش دری برنامه رادیو صدای خلافت خوش آمدید حالا توجه شما را جلب داریم به داشته های امشب احتفو احلا نشي. احلا نشی رادیو صدای خلافت رادیو صدای حق 90 اف لحظات خبری صدای خلافت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 السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ شنوندگان عزیز رادیو صدای خلافت به امید صحت مندی و سلامتیتون شما را به داشته های برنامه امشب خوش آمدید میگم نخست از همه با خبرهای جهانی دولت اسلامی می رویم و این هم سرخطی چند خبر مجاهدین دولت اسلامی کنترول چندین نقاط مهم را در ولایت خیر به دست آوردند سنین الصواری. سنین الصواری. یک حمله وسیع مخالفان مسلح در ولایت حلب عقب رانده شد دست کم 100 کشته از نیروهای رافیزی در امیریه شهری فلوجه و کشته شدن رئیس اطلاعات جنایی داغستان در یک درگیری نشيد و دررب و این هم مشروع خبرها، مجاهدین دولت اسلامی حمله گسترده‌ای را بر مواقع ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آن در مناطق مختلف ولایت خیر انجام دادند. در استری چندین ساعت در گیری، ساختمان آموزشگاه رانندگی بانو راما در جاده بین المللی در غرب شهر دیر زور تحت کنترول مجاهدین دولت اسلامی درآمد. همچنین مجاهدین توانستند تا بر روستای کازیه شام مسلط شده و پس از کنترل چندین نقطه مهم در کوه سرده و اطراف میدان اتیم در جنوب شهر مذکور راه امدادی ارتش سوریه میانی میدان هوایی دیر زور و تیپ 137 را بستند در همین حال گروهی از مهاجمان فدایی به بیمارستان اسد، مسکن دانشگاه و پوهنتون فرات و ساختمار آتش نشانی حمله ور شدند درگیری های شدیدی بین استشادیان و نیروهای دشمن صورت گرفت اما تاکنون از جزییات این حمله گزارش داده نشده است آژانس خبری اماق می گوید که در مجموعی این حملات در ولایت دیروزور بیش از 80 تن از asker نظام سوری کشته و سی تن نشان زنده دستگیر شدند همچنان گزارش شده است که در این درگیری دو تانک دو عراده موتر نظامی BMP منهدم شده و دو تانک دو اراده بی پی دیگر به شموری 1057 میلی مترا و سه راکتی 23 میلی مترا غنیمت کردید رسانه‌های دولت اسلامی تصاویری را نیز از این غزوات به رساندند که در آن اجساد کشته شده‌ها غنایم و چیزهای دیگر به چشم می‌خورد یک حمله وسیع مخالفان مسلح در ولایت حلب عقب رانده شد این در حالی است که مخالفان مسلح سوری با همکاری پنج جنگنده هوایی آمریکایی و حملات توبخانهی زمینی میخواستند تا به دو دودیان و براغیده در حومه شمالی حلب پیش کنند اما به فضل الله تعالی به مقاومت شدید نیروهای دولت اسلامی روبرو گردیده به شکست شرمناک مواجه شدند گزارش از از حمس است که مجاهدین دولت اسلامی در این ولایت نیز هم ماسه آفریدند در تازه ترین موارد مجاهدین دولت اسلامی بر سی نقطه نیروهای نسایری در نزدیکی کوهی الهیال در غرب شهر تدمور حملوار شدند در اثر چندین ساعت در گیری دست کم چهار اسکر نظام سوری کشته و چندین تنی دیگرشان جراحت برداشتند نیروهای دولت اسلامی حوالی دیروز یک حمله گسترده تهاجمی را بر موازی ارتش عراق در امیریه شهر فلوجه انجام دادند در اثر این درگیری ها تلفات بزرگی جانی و مالی به دشمن وارد گردید در هجومی که از سوی مجاهدین فیدایی دولت اسلامی در محله های مجتمع رافضی ها انجام یافت دست کم صد تن از اناسیر صحافات و ارتش عراق کشته و زخمی شدند در همین حال یک حمله دیگر که بر مرکز پلیس صورت گرفت تمام عناصر مرکز کشته و موترهای داخل آن امبی آتش گردید یک خبر دیگر از فلوجه ها کس کی نیروهای دولت اسلامی توانستند تا یک طیاره بدون سرنشین اطلاعاتی شب نظامیان بسیج مردمی را در منطقه الروفه در بخش الکرما در شمال شرقی فلوجه سقوط دهند یک حمله تهاجمی پیشمرگاه های مرتد در روستای کانونه در کوه بعشیقه در شمال شهر موصل با قبر شد در اثر درگیری‌های های مجاهدین دولت اسلامی ولیت قفقاس با نیره های روسیه در شهر دربند در جنوب داغستان رئیس اطلاعات جنایی با دو همراهش کشته شدند. یک حمله کننده استشادی دولت اسلامی تجمع نیره های راقی را در منطقه بوحیات در شرق حدیثه در هم کوبید که منجر به تلفات جانی و مالی در صفوف دشمن گردید. در همین حال یک تانک زیرپوش نیروهای عراقی در منطقه الجرایشی در شهر رمادی منهدم گردید و در اخیر یک خبر از خراسان در اثر انفجار یک موین نجاسته شده در منطقه روداتی ننگرهار دست کم 6 تن از ملشه‌های پاکستانی کشته شدند عملیات اخیر دولت اسلامی در کشورهای مختلف از جمله عراق، شام، لیبیا و نیجریه ثابت ساخت که دولت اسلامی همان طوری که دشمنان میگوین ضعیف نشده. بلکه قویتر شده است حقیقت این است برای دولت اسلامی مهم نیست که دشمنانش چگونه فکر میکنند بلکه دولت اسلامی نقشه ثابت و محکمی دارد و طبق آن پیش می همان گونه که شیخ ابو محمد العدنانی می ما هر جا و هر زمان بخواهیم ضربه می زنیم این در حالی است که دولت اسلامی در روزهای اخیر حمله گسترده را زیر نام غزوه شیخ ابو علی در عراق و شام براه انداخته است و ضربات اصلی این حمله تا کنون شروع نشده و این غزوه هدف مهمتری دارد که در آینده نزدیک دوستان و دشمنان متوجه آن خواهند شد. در همین حال دولت اسلامی بیشترین ضرباتش را با شریف اللوجه در عراق و لوایتی خیر در شام تمرکز بخشیده است هر دو خیلی مهم اند شکست محاصره فلوجه حرکتی به سوی بغداد و فتح دیروزور حرکتی به سوی دمشق است باذن الله تعالی صليل الصوارى نشيد الربا و درب القتال طريق الحياه ما بين اقتحام يبيد الطغاة و من مصري رادیو صدای خلافت رادیو صدای براعت از همه کفار مرتدین و روافض نود هج من های منهج مؤمن و بادیان تا رادیو صدای خلافت شما را باز هم در برنامه منهج تا با خود داریم. اینکه در مباحث گذشته پیرامون موضوعات فکری بودن و غیر فکری بودن بینی و ایدیولوژی و جهانبینی مادی و اسلامی صحبت های خود را با استاد داشتیم و جهانبینی مادی را در دو شیوه نظام و نظامداری هم به معرفی گرفتیم. بخصوص در مبحث قبلی بحث پیرامون مسلک و نظام مزخرف و زد بشری یعنی سرمایداری هم شنیدیم و این را هم دانستیم که امروز بخش اعظم از ناوسامانی ها در جهان ناشی از همین نظام فاسد و دست دستنشانده بشر است. حال می در این برنامه از استاد نسبت به مسلک کمونیزم مشنویم که این مسلک و شیوه نظامداری کفری چی گفت و شنودهای خود را نسبت به بشر دارد. خب پیش از این که وارد بحث پیرامون این مسلک شویم قرار اینکه شنیدیم که در مسلک سرمایداری یک چیز خطرناک مسئله ربا و سود بود اسلام چی نظر در پیوان به پدیده سود دارد؟ الحمدلله وحده و والسلام والسلام من لا نبی بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدری و لی امری وحلل من لساني یفقه قولي اما بعد وقال تعالى یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله در مباحث گذشته پیرامون جهان بینی مادی مشخصا صحبت های خود داشتیم و چون بحث ما واضح تر شود روی دو مسلکی که شیوه های کفری و غیر اسلامی و غیر آسمانی بود و مشکلات خود تو را هم به معرفی گرفتیم خصوص در مبحث پیشین بحث پیرامون مسلک سرمایهداری یا فیودالزم یا نظام کپیتالزم یا نظام راسمالیزم هم داشتیم و ای را گفتیم که نظام کپیتالزم هم یک نظامی است که از شالوده ذهن و ساره ذهن بشر ناقص است یعنی در مقابله به نظامهای الهی و ادیان الهی است که در بخش اخلاق به نظام و نظامداری هم توجه شده مهم. و یکی از مسائلی که بسیار خطرناک بود و یکی از عوامل شکست در امی جوامع شرقی هم می باشد مسئله سود و مسئله ربا است و گفتیم در خلال بحث‌های خود که مسئله سود هم یکی از مسائل بسیار خطرناکی هستک و یکی از اعمال و کارها و گناه های کبیره و وزشته است که الله سبحانه وتعالی در قباهت و بدیش یعنی بسیار آیات و احادیث توسط رسول الله صلی اللہ وسلم بیان داشته و ایرام گفتیم که نمی اصل در نفس امی نظام مشخصاً در مخالفت با اخلاق اقتصادی در اسلام است. هم. همان قسمی که در شروع آیت تلاوت کردیم که الله سبحانه و در سوره بقره می‌فرماید که یا ایها الذين آمنوا الله ای مؤمنان از الله بترسید و باز می‌فرماید که وزرو ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. و اگر مؤمن هستید آن را که از ربا مانده است رها کنید. و در آخر میگه فإلَم تَفْعَلُوا فَظَنُّوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ورسولی. اگر چنین نکردید به جنگ از جانب الله و رسولش آماده و خبردار باشید حتی یکی از علما صالح المنجد در یکی از کتابهای خود به نام محرمات یک باب مستقل در رابطه و در پیوان به همین مسئله قبه ذکر کرده و گفته در قرآن کریم غیر از اینمین مسئله شنی و زشت و پلید در دیگه مسائل جنگ ایلان نکرده الله و رسولش یعنی در حقیقت کسی که سود میخوره به این که در جنگ با الله و رسول استاده است و حتی در منابع دینی کسانی که در رهینمی گناه کبیره ملوث میباشند در طرف این کسی که سود میته، کسی که سود میگیره و حتی کسی که در بین بینوان شاهد واقع میشه الله سبحانه وتعالی اینها را چی گفته؟ ملعون گفته و در حدیث جابر رضی عنه آمده است که رسول الله صلی وسلم میفرماید نسبت به همین مسئله که الله عزوجل سودخور و, سود و سود دهنده و گواهان سودخوری را نفرین کند. و در حقیقت یک نوی بدوا کرده نسبت به افرادی که در امین مسئله پلید و زشت و قبی ملوث میشه و جرم همگی آنها یکسان است. و در دیگر حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ میفرماید حتی در یک حدیث دیگر سخت قباعت این گناه کبیره را بین داشته است و آن این است که عبدالله ابن مسود نقل می کند از رسول الله صلی الله علیه و که ربا افتادسه شبعه دارد یعنی افتادسه بخش دارد که سبکترین آن مانند این است که انسان با مادر از زنا کند الله. در حدیث دیگری هم نقل است که عبدالله بن هنزله می گوید که یک درهم ربا را اگر یک درهم سود اگر یک انسان دانسته بخوره برا ب... یعنی سنگیرتر است بار گناش از سیوشش زنا حتی ربا یک مسئله اتفاقی و یک مسئله است که کلا سر از او اجماع است. در یکی از آیات الله سبحانه وتعالی می که و احل الله البع و حرم الربا یعنی حرمت ربا مطلق در قرآن کریم ذکر شده و یکی از خطرناکترین مسائل استک که اسلام سخت بالای از او رد کرده و این را به یکی از عوامل شکست در جوامی بشری و در نظام و نظامداری و در زندگی رسالتمند نفیل کرده جزاکالله خیر در جستجوی حق حق بیاید که در جستجوی حق شویم و با کسان راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت سرامی خوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت می الحمدلله باز ما امیرادیو خلافت اسلامی که فعال شد از طریق انترنت باز ما تلاش کردم را پیدا کردم خیلی حقایق برم معلوم شد بعد از ایما اقدام کردم که از دهت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیایم اینها ها کسانه هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند. خواست الله بود که ما کش کردیم گشتیم با استازه هاش ناشتیم با جاهای مختلف هاش ودیدیم و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و براخره تانستیم به توفیق الله تعالی ما به رسیدیم. این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید. جمعه شب ها از رادیو صدای خلافت. دربنا درب قویم بیل هده القرآنی سائرون في طریق الحق یا جند الله سائرون بی طریق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله که سود یاگ مسئله بسیار خطرناک است شنان که پیانبر صلی اللہ وسلم در یک حدیث لعنت گفته بر سودخور و در دیگه حدیث یعنی کسی که با مادر خود زنا کنه خب در شیوه سرمایداری شنیدیم که ربا هم یکی از اصول بنیادی این مسلک است حال می بالای ای که شیوه و مسلک کمونیزم چی گفت و شنودهای را نسبت به فکر و عقیده خود دارد در مباحث گذشته بیرامون نظام سرمایداری صحبت شد و بیشتر ما ترکیز بین بالای نمی دو نظام و دو شیوه نظامداری میکنیم چون ما لمسش کردیم و ما در افغانستان ایره از پیش مشاهده کردیم و حال هم یکی از این نظام های فاسد در افغانستان مورد اجرا قرار گرفته و حاکم هسته مسلک کمیونزم برخلاف مسلک سرمایداری یا شیوی کمیونزم برخلاف شیوه سرمایداری به دو بخش تقسیم میشه و ما در خلال بحثا گفتیم که نظام کپیتالیسم کلن دین و دینداری را از جامعه بیرون نمیکنند در حال که یکی اهدافشی شکن ساختن تفکر روحانی است یعنی کلن بیرون کردنش نیست بلکه در یک صاحه او را محدود میسازد به عنوان چند قضیه اخلاقی و از نظام نظام داری بیرونش میکنه که در نظام نظام داری و مطلق فرد حاکم باشد یعنی فرد حلال و حرام بکنه ولی برخلاف در نظام کمونیسم دو بخش وجود داره یک بخش مربوط بخش... یک بخش مربوط اقتصاد است که بخش اقتصادی مکتب کمونیسم یا مسلک کمونیسم یا شیوه کمونیسم و بخش دیگیش مربوط به فکر و عقیده این مذبه است خب پیش از این که وارد این دو بخش شویم میخوایم بگویم که این مکتب هم نظر به تعریفی که مورخین یا کتب ادیان یا کتب مذاهب معاصر کرده چونین میگه که مکتب و مسلک کمونیسم هم یک مسلک کفری و الهادی است که توسط یک یهودی بدبخت به نام کارلمارس و یک دوستش به نام انگلز در بین سالهای اجده اجده تا اجده هشتاد بنیادگذاری شد در کشور نام جرمنی چون نظر اینها کلا در ناهی فکری و عقیدوی بر نفع دین و دینداری بودن اینا اساس همه چیز ماده میپندارن و جهان مادی معرفی میکنن و نظر به تعریف که در جهان بینی مادی ما گفتیم و مزداق عملیش همین نظام و شیوه نظام که اینها میگن که جهان هیچ هدف ندارد و جهان به صوب نامعلوم بدون هدف در حرکت است و هیچ مسلحتیم در کار نیست و هر چیز غیر از ماده ماده چیزی که ما لمس میکنیم و یک فضا را اشغال کرده و وزن داشته باشه یعنی میگه هر چیزی که غیر از ماده فرض شود یعنی گپ که متعلق به غیب استک میگه او چیست موهوم است یعنی محض وحمیات استک و معدوم است؟ یعنی هیچ وجود نداره و زندگی رو هم گفتم که اینها میگن همین مسلک زندگی رو میگن که زندگی بین تولد و مرگ است وقتی که انسان میموره بدنش به ذرات تبدیل میشه و نهایت هم در ارواه پراگنده میشه و نظر بینمی فارمول رکینا گذاشتن منکر آخرت هم میشه و این نظام در 19 ابده توسط لینن که او یک انقلاب بسیار بزرگ و قدرتمند در روسیه برا انداخت حتی در وصف لینن هم بعض آثار وجود دارد که این شخص یک شخص یهودی بود و این شخص یک شخص خونخوار و یک شخص ظالم و یک شخص مستبط بود و توانست که در 19 بعد از امین انقلاب قدرتمند امین مفکوره و تصور کمیونیزم در جامعه روسیه مورد اجرا قرار بده و این قدرت نظامی زور آتش و آهن بود نظر به بعض روایات تاریخ که باعث شد که این نظریه و این نظری مزخرف و ضد دینی و زد بشری را بالای همان افرادی که دور پیش جغرافی روسیه زندگی میکرد تحمل کنه بعدا کسی دیگره به نام استالین که یک افسر ارشد بود و یک بدبخت خونخوار هم بود و بسیار خودخواه بود و در قتل های هم در بعض کتب تاریخی نامش به عنوان یک قاتل مشهور ثبت است ای در اوایل سکرتر با صلاحیت حزب کمیونیزم در نفس روسیه بود ولی بعدا به عنوان رئیس امین حزب چی شد گماریده شد و ای به حد بدبخت بود که هر کس به عنوان یک فرد مخالفت با همین نظام کمونیستی که سراپا یک نظام زشت و پلید و ضد فطرت انسان بود برمیخواست سرش از هم میباشید حالا آمدیم در ناهی در ناهی فکر این مسلک چیز بگویم فکری این مسلک این است که جهان مادی است و همه چیز از ماده است و غیر از آن که قبلا گفتیم هر غیر از ماده چیزی که ما او را محسوس می میکنیم و لمس میکنیم فرض شو و و معدوم از همین است که اونا از مفاهم مثل قبر و عذاب قبر و معاد و آخرت و مکافات و مجازات و گبه که متعلق به زندگی آخرت یعنی دوزق سختییا و آسایش و جنت اینا چی چیستن؟ منکر استن و میگن که ما به سی چیز ایمان داریم که او تراهی از این نظریه است که کارل مارکس یهودی است و تطبیقگر از این نظریه است که لینن روسی است و کسی که بخاطر بقای ازی سنده ها و عزار انسان به قتل رسانده و استالین هستن و میگه از چیز کافر هستیم بسی چیز کافر هستیم و ایمان نداریم یکی الله دوم دین و سیوم مالکیت فردی سخت مخالفت با مالکیت فردی دارن و در بخش اقتصادی کمک شرح باید بدهیم که اینها برخلاف نظام سرمایهداری میگن که نظام سرمایهداری به فرد توجه میکنند در حال که نظام ما به اجتماع توجه میکنند و اینا میخوان که در اجتماع یک توازن بین افراد از نظر مصرف ایجاد کنند با موسی سه اولیه از نظر اقتصادی زیاد توجه میکنند که خانه، لباس و زمین برای هرکس و ما در مثال های زنده ایره به چشم سر در افغانستان مشاهده کردیم که دکتر نجیب مرتد کافر هم به عنوان یک کس که رئیس جمهور بود در مکرویان زندگی میکرد و یک کس که مامور بود و معلم بود و یک چپراسی یک مکتب بود ولی عضویت ازب خلق و پرچم داشت او هم در مکرویان زندگی میکرد ولی فرقش چی بود؟ چون به اساس کسرت فامیل مثلا اگر یک نفر فامیل زیاد می بود بر از او یک اتاق اضافه برش می دارم گمان اغلب در پنج اتاقی مکرویان زندگی ما و یک مامور مشناختم که مامور عادی بود و در, در, در, در بخش مصرف هم که برای اینا کوپون داده شده بود و اینمی مواد اولیه را اینا میرفتن از مغازه ها عغز فرقش با یک مامور بود که مامور خودش میرفت امی نیازمندی های خود از مغازه گرفت و کسی که رئیس و وزیر و کسی یعنی رجال برجستی سیاده بود توسط خدمتگزار خود ای را چی میکرد و امین است که تاریخ را هم اینا در مقابل طبقات تفسیر میکنند چه قسم یعنی میگه کل تاریخ بین تو دو قشر در کشمکش اینمی دو قشر یعنی دو مجموعه از مردم که یک مجموعهش خان و سروتمند و مردم های قدرتمند بودند که آمده همیش مردم مظلوم و بیچاره و توهده و اه اه یعنی مزلوم و مظلوم و محروم چی کردند از وجود از یا بهره مندی و بهره کشی کردند که این مظلوم باز خسته علیه اینها استادگی کرده در اینمی کشمکش تاریخ چی شده روی هم رفته بیادند تدام پیدا کرده استاد محترم در مبحث پیشین شما گفتید که نظام سرمایداری بیشتر به ربا توجه کرده آیا در این مسلک یعنی مسلک ارهادی کمانزم همچنین توجه بر این عمل زشت یعنی ربا شده است یا خیر؟ نه برخلاف نظام سرمایداری در این نظام مسئله سود نفی است چون سود طبیعی است که در جامعه اگر ده نفر می باشد و اگر نظام سودی و جا حاکم می باشد هر ده نفر قدرتمند اقتصادی نمیشد بلکه اینمی پول منحصر میشه و محدود می به جیبی یک فرد یعنی فرد به کمال اقتصادی می رسد. در حالی که در این نظام سرسخت مخالفت جدی با او ار ارکان و با او اصول و پرنسیب و که در نظام سرمایداری مخالفت های شدید صورت گرفته و ما در گذشته هم دیدیم که در کشمکش امیدو نظام در اه. کشمکش امیدو نظام چون روسیه به عنوان یک, یک قدرت اقتصادی و یک قدرت استقباراتی و نظامی خاطر تطبیق از این نظام پای خدافارا یعنی جغرافی روسیه در افغانستان گذاشت چون مرکزیت بود و میخواست که پیش بره به خاطر تطبیق و تسی از این نظریه و ما دیدیم که جانب دیگه امریکا چند هزار مایل دورتر نظری کاپیتالسم و سرمایهداری رو در ذهن خود می پرورن. و دیدیم که این نظریه ای تقابل ای دو نظریه، یعنی مخالفت‌های سیاسی و شدید دو نزدید نهایت امر مجاهدین غیر فکری افغانستان به خاطر زدن نظام کمیونیزم در افغانستان چی کرد استفاده کرد و نهایت امر افغانستان به یک قحقره و به یک بدبختی کشاند. داد الله خیر استاد محترم خب های ارجمن چون وقت برنامه ما با پایان رسیده در مبحث امشب شدیدیم که مسلک کمیونزم یک مسلک الحادی و کفری خطرناکتر از مسلک سرمایداری در بعضی دیگر از مسایل بوده. چون بحث پیرامون این مسلک تکمیل نگردید در برنامه های بعدی این بحث را با ما یکجا دنبال کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گل های خراسان, خراسان آیا شما میخواید که رادیو دیو صدای خلافت را از بر ببرید برنامه فکری تعلیمی و تربیتی. باشه که با دختر را که سطری میکنی خلاف اسلام است میتونی برمه بگی که کدام کدام دعا رو یاد داری؟ داینم خوردن دعای سخو خیستن دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند. اینها آینده درخشان خلافت هند پیام برزویی است که بیایند به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله بله اینها گل خراسان هند که در کوههای خشک، جنگل های پایان و آوازهای حیبتناک صلاح های به فکر و روحی اسلامی تعلیم و تربیه را بدست می آورند با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است. دیجه بمبوری میشه یا جنگ میش یا صدای تفنگ و صدای بمی چذاره مش نوی؟ نمیترسی؟ نه الحمدلله. همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم می کنند ان الله. دلگفته های اطفال خراسان. دوشنبه شب ها از رادیو صدای خلافت.